خویر ای کمان قبطر سلام علیکم رحمت الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلوا محمد محمد المكرمين

لا سيما بقيه الله في الارضين ارضاخنا و ارضا العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه لما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه ليبينا لهم

جلسه علمی حجریی که در منظر آیون هستیم و الحمدلله که بزرگواران توضیح دادن از فضلها از طلاب در مجموع در این جلسه حضور دارند و موضوعی رو هم که خوب به بنده

پیشنهاد کردن و اعلان کرده بودند مکاتب و روشهای های استنبات فقهی است خوبی موضوع هم اینجا می تلابه که ما منعبه نسبتاً فنی این رو مطرح بکنیم یه موقع است که خب مخاطب ما عموم عوام هستند

خب اون لسان فرق میکند ولی اگر در جمع آخر اشخاص طلاب و فوزلاب و محققین باشه باید حق این مطلب ادا بشه حق این مطلب هم ادا بشه خب مستحضری این یکی اجمالی هستی که تفسیدی تفسیدی

ما این مباحث رو در درس خارج حداقل اقل دو ماه مطرح میکنیم بیش از دو ماه اونا هم بزرگوارانی که هستن از اساتید هستن توشون بزرگوارانی مجتهد هستن اساتید کفایی هستن و اونها حتی دادشون در میاد میگن که شما خیلی سریع و

مطالب رو بیان بکنید در دفع دو ماه خب در این جلسه توقع نیست که ما تفصیل رو بیان بکنیم امکانش نیست اما من فقط فهرسه ها رو اشاره میکنم با مقداری توضیح که اون انوان معلوم بشد مرادشی هست همین مقدار از بکنم که یه موضوعی که ما اول باید اینجا توجه داشته باشیم استقام

و اتغان علم اصول در مذهب شیعه هست خب چون صحبت است مبانی هست مکاتب و روش های خوب خب برمیگرد به مبانی ریشه مبانی استنباط در شیعه همون علم اصول هست یعنی هر فقیهی که هر فتوایی

از شیخ توسی و قبل شیخ توسی کابه های و کتابه فقهی که می نویسد همه اینها و همه اینها ریشه در علم اصول دارد من در بعضی از صحبت قبلی در تهران جلسه که جناب آجای رشاد داشتن اونجا هم این نکتر متذکر شدم چون نکته بسیار مهمه

اشارهی فقط بکنم که اتغان و استحکام علم و اصول به حدیست حد که هیچ دلیلی و هیچ مبنایی محکمتر از مبنای اعتبار علم اصول نیست علم اصول مهمترین

پایه و اساسش برمیگردد به سنت پیامبر اسلام و ائمه تاهرین در بیان وحی و تبلیغ احکام الهی وقتی که وحی نازل می رسول مکرم و همون ارتکازاتی که عام مخاطبش داشتند

وحی رو برای مردم بیان می کرد و امغام می کرد اعمه تاهرین و تمام ائمه علیهم السلام مخصوصا امام باقر و امام صادق که بیشترین روایات ما از دو بزرگوار هست همه و همه اینها بر اساس یک ای و مبنایی و پایهی با مردم زمان خود

از دین خدا و احکام شریعت سخن گفتن حالا چه در احکام فرعی، فقهی فرعی باشد، عملی ما ازش به فق تعبیر میکنیم فق و یا در مسائل اخلاقی باشد و یا حتی در مسائل عقاعد توقیفی باشد همه اینها بر اساس

مبنای ماهابری بوده. یعنی رسول خدا وقتی که وحی رو بیان می کرد و رو بیان می کرد در واجات دیگری که واهی نبود عهد طاهرین تمام روایات رو که در حقیقت به مردم زمان خودشون مخاطبین زمان خودشون القا کرده بودند کردن بر اساس همون قواعد ماهابری اقلای عالم بود.

که عرب از اون قواعد محاوری اقلای عالم مستثناچی ها نبوده شما از همون اول کفایه جلد اول تا آخر جلد اول و برخی از قواعد دیگری که در جلد دوم مسال تعادل و ترکی و حکومت و برود رو آورده

اینا همه رو جمع کنید در حقیقت خلاصه میشه در این انوان. قوانین گفتمان و گفتگو و محابره اقلای عالم که بر اساس این قوانین با هم از قدیم ایام که تمدن بشری ایجاد شد قرنها قبل از اسلام بر اساس این قوانین با هم دیگر مکالمه میکردند احتجاج میکردند زبار رو عرض میکردند

و نبی مکرم از این قاعده مستثنا نبود بر اساس همین قواعد با مردم سخن میگفت اگر نمیکرد این کار رو اصلا تبلیغ دین تحقیق پیدا نمیکرد، چون مردم فهمشان از تعابیر یک سخنور یا یک مقنن یک قانون گذار یا یک کسی که با اینا

از هر مقوله سخن می فهمشان بر اساس همان قواعد بوده ارتکازی بوده اینکه سیغه افعال ظاهر در وجوب هست ماده امن ظهور در وجوب دارد یا ماده نهی و سیغه نهی و یا اینکه بحث ظهور مفاهیم و مسئله قانون تقیید و

تخصیص و بسیاری حتی جمع بین گفته های متخالف یک متکلم که همون قانون تعادل ترجیح باشد و مسئله حکومت و ورود همه و همه اینها باز برمیگردیم به همون قوانین گفتگو مکالمه گفتمان اقلای عالم در

مکالماتی که دارن احتجاجاتی که می کنن تفهم و تفهمی که دارن این فلزا قرآن مجید فرمود ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه لیو لهم لسان قوم در این آیه شریفه ولو اینکه لغت قوم هست اما ملاکی که آیه شریف داده است لیو لهم لام نرز هست یعنی

بزرگرس به هدف اینکه که خدای تعالی تبیین بکند نبی اون رسالت خود را وحی الهی را احکام شریعت را برای مردم زمان خود این غرض و این هدف مبتنی است بر مطابقت لسان نبی و لسان مردم لسان قوم این لسان

در آیه شریفه قدر متیقن همون لغت هست همون ملاک رو شما نگاه بکنید به همون درجه به همون میزانی که همخانی لغت بین نبی و بین مخاطبینش تأثیر دارد در تبیین و قوام تبیین است و تبیین بر آن استوار است

همگونه بودن هم لغت بودن تأثیر دارد به همون میزان بلکه بیشتر از اون میزان مطابقت قوانین محابری که متکلم بر اساس آن سخن میگوید با قوانین محابری که مخاطبی نش بر آن اساس با هم مکالمه میکنند دو تقیی متفهم این دو باید یکی باشد

اگر متكلم بر اساس اون خاصی مثلا سخن بگد که اصلا اون قوانین و قواعد در میان مخاطبینش اساسا ناشناخته هست بر اساس اون با هم سخن نمیگن این میشد اقراء به جن به نقض غرض رسالت میشد هرگز همین تحقق پیدا چی ها نخواهد کرد

او از سیغه امر چیزی رو اراده کند مخاطبین خودشون بین خودشون از سیغه امر بلا قرینه معنای دیگری رو با هم میفهمند مرتکز در ازهان اونها هست و و و تمام قوانین مهاوری لفظی دزاست که اگر مطابقت لغت نبی و لغت قومش

تأثیر دارد در تبیین شریعت تبیین وحی تبیین احکام الهی که آیه شریف بان اشاره کرده است الا بلسان قومه یبین لهم بیش از آن و بیش از آن به مراتب مطابقت اون قوانین محاوره که تفیم و تفهم بر آن مبتنی است باید بین متکلم و مخاطبش چی باشد آقا

مسلم باشد، مطابق باشد متقدم بر اساس همون قوانینی باید سخن بگوید و بر همون قوانین اراده بکند از اون کلماتی که از اون تلفظ می شود که مخاطبین هم همون معنا رو بر اساس همون قوانین با همدیگه چیکار میکنند آقا تفییم تفاهم میکنند فلذا با این مقدمه میخوام ارد بکنیم که

پس بنابراین علم اصول ما مهمترین بلکه تنها و تنها دلیل متغن و قوی و مستکم اعتبار علم اصول شیعه بر اساس قوانین محابری اغلای عالم هست که با هم تفهیم و می کنند

که همون جلد اول کفایت اصول رو تشکیل میداد به علاوه چند تا موضوع دیگری که من گفتم که جاش این بود که تعادل و ترجیح و اون مساعد تعادل ترجیح رو هم کفایی بیارد در خاتمه همون و باید آقا؟ لفظی چون اونو هم داخل در قوانین محابره اقلایی میشه برای اینکه اگر چند کلامه

یک متقدم در یک سخن صد روزایی داشت یا کلام این محفل و اون محفل و محفل دیگرش با همدیگه اختلاف داشته باشد گوگلا خود همین رو با همدیگه یک برداشت دارن متنق رو به وسیل مقید و متنق رو تغییر میزنن یعنی در موارد اختلاف هم باز اونی که محکم هست در بابت آدال ترجیح همون قوانین محابریه چیست آقا؟ گوغالاست.

حتی امام علیه السلام در وابطهادو ترجیح میگه که خضم مشته را بین اصحابه به قول امام راه الازمون شعن ما در انوار الهدایه میگه این ارشاد به سیر اغلا است سیر و اغلا است که عالم وقتی که اگر چنانچه یک خبری و یک روایتی که مشهور باشد یعنی شهره نوازح آنچنان بین در ارتکاز اغلا واضح باشد ایرو رهانه رو بکنند

بچه از به یک چیزی که غیر مرتکز هست و غیر مشهور هست. خلاصه این اساس علم اصول گصول ما مبتنیست بر این چنین استحکامه. یعنی هیچ سیری که همه افقه ادعا کردن و درست هست ادعای اینها خیلی هاش. تمام سیره که در سرتا تا سر فرو بر فروع مختلف وقتی که استلاح میکنه هیچ سیری بالاتر از این سیره چی نیست. غمیتر از این سیره نیست.

مستحکمتر از این سیره متشاره که خوب است که سیره نبی مکرم و سیره همه اعمه در تبدیق دین و بیان احکام که مبتنی بود بر اساس قوانین محابری اقلای عالم تا اقراه جهد بیش نیاد نقض درس رسالت و امامت بیش نیاد اونا چیزی بگند و مردم چیز دیگری بفهمند اون وقت میشه تکلیف مجبور محال لازم میاد خب این یه نکته اساسی است که بکنم که

و خوب اردت فرق بین اصول شیعه و اصول اهل آمین است که اصول اهل آمین مبتنی بر بعضی قرائن عقلی زنی مثل قیاس و استحصان و مقاصد شریعت و و مساده مرسله و سرد ذرایع مبتنی است که اونها داخل در ظهورات انفاظ آیات و روایات نیستن ممکن است بعضی از مصادیقش این اناسر

داخل در زواهر خطابات باشند، اما عمده به جلش نیست بر اساس اون چرا که عقد ادراک میکند بر اساس اون ملاکاتی که استنباط میکند ملاکات زنی که در هیته زواهر لفت چیاقا آقا نمیاد شیعه میگه ما اینا قبول نداریم حرف قصودین شیعه این است که این عناصر استنباتی که است در اهل آمه حرف اول رو میزند

شیعه میگد اگر اینها در محدوده زغاهر خطابات بگن ما برای محجت و الله فلا چون ما نوکر مولایمون هستیم که رسول خدا و ائمه تاهرین اونا متصل به وحی الهی هستند نماینده ذات اقدس احدیت روی زمین هستند برای همه تاریخ بشریت

از زمان رسالت پیامبر خاتم محمد مصطفی الله الله الله تا قیام قیامت رشته و حبل الله متین که عبد و عبودیت عباد را متصل به فرمان الهی میکند معصومین علیه مسلمان

خطابات معصومین را قلمای شیعه مثل خطابات قرآنی می دانند کلهم نور واحد یعنی ذات عقدس اهدیت را نبی مکرم را امیر المومنین را و همه ائمه را به منزله متکلم واحد می دانند این اساس است که الحق و جواز و تخصیص کتاب العزیز به خبر ال واحد

چون یک متکلم حساب میشن وقتی که یک متکلم حساب شدن فل المتکلم ایل احد کلامی ما شاق میتوند در کلامش غرینه داشته باشه ذل غرینه داشته باشه یه متکلم الان اگر شما یک کلامی بگید اون کلانید یک کلام خودش بگه هرگز نمیان ببینیم اطلاق و تحقیق جام بکنن اون واقعا حرف خودش زینه واقعا خودش زده چطور جمع بکنید جمع معنا نداره اونجایی که متکلم دو بشن

جمعان زمانی معنا و مفهوم پیدا بی که متکلم چی باشد آقا؟ یکی باشد چون ذات اقدس احدیت در آیات شریفی قرآن و نبی مکرم در روایات نبری و ائمه طاهرین علیهم السلام در کلماتشون همه و همه به منزله متکلم واحد هستند معامله متکلم واحد میشد با اینها لذاست که خاص

غرینه است و زل زلغرینه لذات که مقید دلیل مقید غرینه است و چی آقا زلغرینه خب اینا من فقط خواستم اشاره اجمالی ها داشته باشم راجب استحکام اعتبار علم اصول دلیل متقن علم اصول که ریشه در سیره

نبی مکرم اسلام و ائمه طاهرین در تبلیغ دین، بیان وعی، بیان احکام الهی، که هزاران هزار روایات از حضرات به ما رسیده است، همه اونها بر اساس همین قوانین ماهبری هست که علم اصول متکفل تحلیل و تنقیه همین قوانین و اقلایی عالم هست که بر اون اساس باید یک فریشی فتوا بده.

فرق بین تنقیه ملاک قطعی را از قبیل قیاس محرم نمی داند. فرق بین تنقیه ملاک قطعی یعنی ما روش های رو که داریم الان خدمت شما عرض می کنیم در درجه اول اختلاف آمه و شیعه در روش استنبات است که الان خدمت شما عرض کردیم مقداری رو اتفاق فرمودی؟ به.

خب پس مسئله قیاس با تنقیه ملاک قطعی فرق ماهویشون چی آقا؟ این است که ملاک قطعی گرچه قطع علت مستنبته هست توجه فرمودی و به تغییر فقهای بزرگ قدیم ما اسمشی میگفتن قیاس مساوات اسم همین ملاک قطعی را میگفتن قیاس مساوات

در مقابل قیاس فهوا و اولویت و قیاس فهوای مخالف قسم سالس چی می شد آقا؟ قیاس مسابات یعنی به طور مساوی این ملاک در اصل و فرد در مورد خطاب و غیر مورد خطاب سیان است جاریست فرزای شده قیاس چی آقا؟ مسابات خب غلط این است که

با اینکه ماهیت تنقیه ملاک قطعی قیاسه حتی اغ... اصولین شیعه از آن دارن همه گفتن که تنقیه ملاک قطعی از قبیل قیاسه اما این قیاس است که در دائره ظاهر خطاب هست حسد تعریف تنقیه ملاک قطعی است که این داخل در ظهور خطابه خارج از محدوده ظهور عرفی خطاب چی آقا؟

نیست چون داخل در ظهور خطابه لذاست که این درمی ملاک قطعی بیشد همون کلام شاره منطقه ملاطف شاره در جایی بیانی روایتی تکی به ملاکی بکنن که عرف میفهمد که این ملاک موضوع اصلی هست توجه فرمودی نه اون موردی که رابی سوال کرده و حضرت جواب داده

همین که تعدیل کرده به یک ملاکی اون ملاک هست که موضوع خطاب است. خب اگر کنم که اختلاف مشارب مشارب و مناهج و مکاتب و روش های استنبات فقهی حالا در محدوده فقهای خودمون یعنی فقهای های شیعه را ما میخوام عرض بکنیم این اصلا ملاک این اختلاف اون رمز این اختلاف

اون منات این اختلاف برمی گردد به اختلاف مبانی اصولی و مبانی رجالی خب در مبانی رجالی مثلا حالا شما یکیش بله اختلاف ملاک و اخبار که قدمای شیعه

ملاکشون در حجیت خبر وسوق به صدور ولی متأخرین به ساقت روات رو اسب گرفتند فرقشون باید خوب روشن بشه یعنی چی؟ خبر باید حجیتش مبتنی بر وسوق صدور باشد یا اینکه نه مبتنی بر به ساقت آهاد روات باشد معلوم آقای خویی

مقارنینشون سایر فقهای معاصر نایینی عراقی دیگران اینا متاخرین جلدشون بعد از زمان بعد شهید یا قبل از شهید هم ما در کتاب جسور روایه طبقه بین این که از کی فقهای شیعه به صراحت رو ملاک حجیت قرار دادن بعد از اصل قدما بیان کردیم اونجا

که خلاصه آقا این دو تا مشرب شدن در مدرک استنباط خب میدونید استنباط شیعه در سرتا سر, تا سر یکی از اندله عمدهش عمده که علم میکنیم این اکثرش این خبر واحد خبر صحیح خبر حسن موثث معتبر که هر کدوم تعریف خودش دارد

مناخره خبری که باجد ملاک چی باشد آقا حجیت باشه این ملاک حجیت در نظر قدما بسیقه به صدور بود حتی اگر احرازم می که تمام طبقات رباطش استقاط هستند حکم به زعف روایت می کردن چرا می چون ما بسیقه به صدور نداریم نرا اینی که بسیقه به صدور بیارد در این روایت حاصل چی آقا نیست

و سقور سدور قرائنی بود من اون سال وسائل بیان کرده و ما در کتاب محجاز سر این رو برش بردیم بیش از ده تاست از قرائن قدمایی که اینها رو سال وسائل آورده در همون فایده خاتمه وسائل ذکرده اینا قرائنی بود که قدما بر اساس این قرائن اگر یک روایتی و یک کتابی این قرائن رو داشت

اینا روایاتش رو حکم به صحت که اکثر قرائن بسیار از اون قرائن الان در طول ده قرن که بین ما و اونا فاصله هست نیست در دست ماها ها خیلی و بعضی هست اونایی که هست رو هم بعضی ما قبول داریم و امان قلیدیت بعضی رو قبول چی نداریم اما ملاک اساسی

وجیت خبر واحد در نزد متأخرین چی است آقا؟ بعد آهاد روات در یک روایت طبقات دارد در تمام سنت بعد عدد خط این راویشی باشد آقا؟ سقه باشد اهم از امامی یا غیر امامی آمی یا شیعه فرق ندارد این وساقت در نه نه ادالت که اختلاف از بازر همینجا اختلاف بین شیخ توسی و بین صاحب شرایع

شیخ توسی سی نه نظر ما اصلا ایمان شرط نیست ادالت معنای اخص که مجوز اقتدا در سلات جماعت هست اون شرط نیست در نقل روایت کافی است در نقل باشد ولی اینکه طرف عادل نباشد عامی باشد منرف المذهب باشد فاسد عقیده باشد فرق ندارد چون

مدا که خودجیت خبر وساقت در نقل معلوم ساب رد می رو میگن نه درست نیست چون ایمان اگر نباشد لا نومن من کلو رابی که در مسائل مهمترش وقتی که عقید فاسد بود اینکه که سهل است ممکن در اینجا خلاف بگرد شیخ توزی رد می کند این رو بلخواه

ما هم حرف شیخ توسیری پذیرفتیم و قبول هم داریم حرف درستیم هست که سری و بر همین است. به هلیان کار ندارم به وساقت در کردن در عمل به اخبار آها توجه و فرمودیم اونقال این است که همینجا الان چند تا مبناه شده چقدر اختلاف شده بین قدما متاخرین و نر خود همین قضیه وساقت روات که در نظر متاخره مناکه

همین وساقت راوی معیار چیه؟ آیا ایمان و ادالت معنی اخصه؟ یا فقط وثاقت در چی آقا؟ نقل خب اینجا الان بین شیخ خطوزی و بین صاحب اختلاف شده توجه و این در مسئله خود خبر واحد و خب خبر واحد آیا فقط در احکام فریفقی اینجا فقها رو دست شدن فقای شیه دست شدن

که خبر جماعتی میگن آقا در تفسیر خبر رواه نیست خبر صحیح در عقاد خبر صحیح حجیت ندارد فقط در احکام فرعی شدی ولی جماعتی مشهور بلی نه متفق حجت خب ما این مشهور قبول داریم حرفشون رو و رد نکنیم اون حرف اون بزرگواران رو چون تمام اخبار

و نصوص، چون دلیل وجهت خبرواهیت، نصوص متواتر چون خودش زنمیه دیگه این عادل باشد در نب موجب به به مضمون اون خبر چی آقا؟ نمیشه چون اعتمال خطا از او و ایج که نیست که حالا عادل باشد ات خطا که درش مطمئن یک نفره دیگه جازال خطا پس برای اون و خبرش حاصل چی آقا؟

نمیشه فلیزا خبر میکن واقعیتا چیست آقا ولو غالبا مطابق هست یا اغلب المطابقه باشد اما این خبر واحد صحیح صحیح باشد در ذات خودش نیست. اگر چونچه دلیل اعتبار بود اخبار متواطر نباشد این دول لازم میاد که اثبات بکنیم خبر زنی رو به خبر زنی چی آقا دیگری و این

نمیشد ما از اموم منه نزدن نایغنی من الحق شیعا لا تدخو مالی صدقه به علمان خارج بشیم با یه خبر زنی دیگری به این خبر زنی اعتبار بدیم فلزا عدده رو معابلیم در اصول نصوص متواتر هست از هست دلالت دارد بر وجهت خبر صدقه فلزا خبر واحد ولو خودش ذاتش زنیه اما اون دلیل اعتبارش دلیلی چیست خواه؟ قطعی

این است اون عبارت سار معالم که فقهای بزرگ ما گفتن که متاسفانی که سنگین و وزین و خوب خونده نمیشد این در کوزه ها. زنیت و لا ینافی قطیهت الوق یعنی طریق خبر صحیح زنی زادن زنی هستا. اما اون محداش مفاد این خبر که احکام شهری باشد اون وق وقم قطعی چرا؟ چون حجیت این خبر قطعی است.

خبر به زاده ای زن نیست اما حجیتیش چی از دقا؟ قدعیست فرزا معداشت به حکمش باشند حکمی چی میشه دقا؟ قدعی زنیت و طریق لا یا ناخی قدعیت لما زا لن حجیت خو قدعیتون خوب این الان دوتا شدن اینجا مشارق خبر صدر ما مطلقه حجیت میدونیم فرقی بین وقتی که قدعی شد حجیتش فرقی بین اخلاق

علم اخلاق و بین تفسیر و قرآن مجید و شما مگر اتفاق نکردید محققین از اصول این الحق و تقسیس و کتاب به خبر واحد اگر نمیگید رو، یعنی چی هستند؟ آقا، شعن مخصص رو در اصول چه کنده شما؟ کشف مراد مگه نبکنند؟ مخصص، مقید، شعنشون چی هست آقا؟ بله، کشف مراد از آم هست

کشف یعنی چی اصلا ماهیت کشف چیه ذات کشف چیه مفهوم کشف چیه تفسیر از آم چیزی ماهیتی و مفهومی جز تفسیر آم نداره. آم چیه قرآن رقو تخصیص و کتاب عزیز به خبر واحد خبر واحد چی روایته اما آم چیه

قرآنه وقتی که تخصیص میگید یعنی چی؟ یعنی این کلی مراد از چی بگرد آقا؟ قرآن میکنه خب همین یعنی تفسیر دیگه مثل چی دیگه تفسیر نیست؟ مقاید همین تو وقتی که در اصول بزرگوار عزیز ما وقتی که شما قبول کردی جواز تخصیص کتاب رو به خبر واحد خب این یک اسمیست

است و فردیست از تفسیر خب سایر اقسام تفسیر رو هم چی آقا شما؟ بپذیری وقتی که حکومت ورود رو اگر چنانچه یک روایتی حاکم باشد برای یک آیه شریفی حکومت رو پذیرفتی اگر چنانچه روایتی وارد باشد برای یک آیه ورود رو پذیرفتی در علم وصول خب حالا این ها از اقسام چی اصلاها؟ تفسیر کشمارات بکنن

همه اینو رو مراد بکنم. حاکم، وارد، مخصص، مغید، در تخصیص و تقیید و حکومت و برود، همه این از قبلی مراد <تصفح> خب یکی از اقسام و حکومت هم تفسیر هست، حکومت اقسامی دارد، حکومت توسعه و زیغ و معلق، حکومت قسم سوم که با قد معروف

بیان کیفیت تشریح و ما جعلها لكم في دین من هنالات یعنی کیفیت تشریح عقام ابنی الهوی به گونه ای بوده که خدای جالا هرج جعل نکرده است این قسمه این از که حاکم بیان کیفیت جهل دلیل محکوم کنند وارد بیان کیفیت جهل دلیل چیابا مراد می‌کنه حاکمین قسمت دیگر رسال حی و تفسیر یکی از اقسامی که قواعد عالم یک

کلام رو حاکم میکنن بر کلام دیگه تفسیره. من تکه الان سخن بگرد، من الان که قایی شما بگم بعد ماها من اونی که در ابتدای سخن گفتم یعنی این، یعنی این، یعنی این یعنی ای این یعنی چی؟ اون تفسیر دیگه، اینو حاکم اینو تفسیر ای یعنی این حاکم میکنن، کلام های آلم رو غلی نمیگیرند تفسیر میکنن، خب کلام روایات تفسیری عیمال مسلام یعنی این بگه خود بگرد خدای تعالی که این

یعنی این ما نکنیم متقلب و واحدن یعنی که مثل خدا تعالی کلام خودش و خودش یعنی مگر تفسیری صورت میکنه پس من این ببینی اختلاف مشارب رو ببینی چی کار میکنه اختلاف مبانی رو اینو دنیایی ای بحث دارد عدنده دارد هر مشربی برای خودش عدنده دارد مطقن هست در جا خودش علم و و فق به این سحادگی ها نیست

خب این اختلاف مشارب در فقط من الان اینجا برای شما بیش از 25 مورد آورد تا یکی رو توضیح دادم شما که میدونم اونجور حال حاد ندارید بخواد بینشینیم من گرچه خودم بخوادم اتمنان دارم که اگر کسی بخواد از من که 5 ساعت بنشینم اینا توضیح بدم حاضرم هیچی آه را عادت کردیم به این ولی خب باید تحمد در نظر گرفت.

توجه و برمونی. خب حالا ما نمیدونیم شما چقدر کی چقدر درس خونده و چقدر این مسائل رو سر در میارد خب در هر حال هستن که جمله علم داریم که در میان شما هستند ادهی که مطالب رو متوجه بشند توجه و برمونید. بله خب مثلا در انجبار ضعف سند به عمل مشهور خب این اختلاف شدید هست مرحوم امام راهل مقام معظم رهبری خب ضعف سند رو به عمل مشهور.

منجبر نمیدونه این آقای همینه ضعف سند رو به عمل مشهور منجبر کی آقا نمیدونه مبنایی ایست در مقابل مبنای دیگر است مبناه دیگری که نه ضعف سند خبر به عمل مشهور جبران میشد علتش هم این است که مشهور غریب به می بودن نه مشهور متاخرین ها فقط مشهوری کی آقا

قدما که غریب هسته عیمه بودن. که با مذاق عیمه آشنا بودن توجه ها مثل اینکه که آقا یه قومی رو شما مثال میزنیم مثالی بود که منوان برجدی خیلی میزد دیر رو و در کلاه منو برجیدی نقدر شده خیلی جالب هست به یک نهمی دیگری گفته خواب ما این رو داریم بستش که اگر چلا قومی در نظر میگیدید یک مولایی دارن یک شخصی دار

که هده از اکابر قوم با اون مولا مراوده دارن، نزدیک هستن. با هم مذاب اونها رو، مذاب اون مولا رو در دستشون هست، اکابر قوم، توجه برمودی. حالا یک شخص ناشناسی از اون مولا یه خبری میاره خب اینجا، وقتی که طرفی که خبربرش شده، برش احراز بشه که همه اکابر قوم رو تصدیق کردن که این خبر مولا هست.

من کلی دارم میگم که در تمام اغلای عالم این پیاده بشن. آیه در اینجا اغلای عالم در چنین وزی به این خبر ضعیف اول نمیکنن میگن عقابل خون کلشون محتمدین که با مولا رابطه دارن رابطه دارن و مذاقش دستشون هست اونا وقتی که گفتن این خبر مولا هست این خبر ضعیف هست دیگه نگاه به حال زعف این رابی چی آقا نمیشن چون قلی است که اینها مشاری این

که من امام البته ضعف سند خبر را به عمل مشهور جابر میدوند در مقابل آی خویی توجه فرمودی؟ خب مکاتبیست روش هاییست خب یکیش مثلا اینه خب همین میدونید چقدر بحثه؟ حتی من در درست خالد بود یک هفته رای به این بحث بکنم تا معلوم بشد که ملاک انجبار ضعف خبر به عمل مشهور چیه؟ طرف مقابل

وهن خبر صحیح به اعراض مشهور که آی خویی موهون میدونن اونجا را جابر نمیدوند اینجا رو موون چی آقا میدوند خب اینجا رو ما برعکسش میگیم میگیم نه موون نیست چون دلیل ما در حجیت خبر واحد روایات تفسیست روایات متواتر هست اونو اطلاع دارد آقا

لا يجوز لا احد من مبادينا التشكيك فيما يروي عنا فقاتنا لا عذر لا احد من مبادينا ان التشكيك فيما عنا ثقاتنا. ما يروي عنا فقاتنا اين لا عذر لا احد این اين اطلاق دارند اين كه فقهاي از كي صادر شده

از امام علیه السلام در ائمه حالا چه بعدن فقاهایی بیان با این مخالفت بکنن که همون متولد نشدن در اون زمان چه مخالفت آقا نکنن این اطلاق لفظیه اطلاق لفظیه امام رو فقط کلام امام میتونه تقیید بزند ولی مگر اجماعی باشد که خود اجماع یک دریدیست بر سنت اجماع همین فقا اون جدا حسابش

اما از اجمع که پایینتر بیاد دیگه از حجیت شورت فتواهی ساقطه تجربه از کنید این موجب بند پس نمیشه چون سرادت حقیقی به اطلاق کلام معصوم رو که لا قوز لله حد من مبادین و التشریف آقا؟ ندارد افاین و سبن عبد الرحمن استقضان آخوز و انهم عالم دینی ما به همین رواده مثل الله کردیم در کسی که بگرد تفسیر و جدیست

در نقطه وجه نیست قابل قبوله قابل قبول میگم این اول ملاق قطعی که گفته بودیم نیت و طریق لا یا نافی قطعی از دلیل بوده همین جا میگه میره به اطلاق دار. ما اگر بیانثاقات رو شما در نظر بگیرید بزرگواران عزیز ما روایاتی که از ائمه ما سلام رسیده در واقع تفسیر مگه کم تر از روایت فقه روایاتی که در باره عقاعد از ائمه ما رسیده میدونید چقدر زیاده

فقط یک باب توحیدش رو محروم صدوق یک کتاب نمشته کتاب و توحید این کتاب از برد خط روایت فقط در مورد توحید حالا بیاید در احوال قیامت و برزخ و قبر و کیفیت محشر و اوه کلاک بکند تدارش ما یرویه عنا سقاطنا این عنوان ما یرویه عنا سقاطنا همه اینا رو شابه نمیشه یا میشه

کسی میتونه ادعا بکنه که این فقط معخواب فقی و فرحی مراده؟ خیر، بس بنامین فرق بین تفسیر و بین فرحی فقی و پروی فقی و بین علم اخلاق و بین سایر معالم دین و معارف دین نیست معالم دین اومده در سعیه یونس ابن الرحمن که در اون روایت اومده چند روایتی؟ عفا یونس ابن عبد الرحمن اون آن خود و

معالم دینی معالم دین اتفاقا روایات توحیدی که صدق نمشته یا روایات اقائل اولا به صدق است از فروع فری فقی اونا معالم دین باشن اونا اصل اساس دین هست تجا خب قدر از این است که همینجا شما نگاه بکنی مشارب رو چقدر فرق و چقدر زیاد هست من

خیال نمی بکنم که بخوام همین رو بخونم که در جلس بسکی نیست ولی همین با نمونه ارز کردم خدمت شما و این جزوهی که الان میمینید نوشتم این صفحه اولش هنوز من تمام نکردم، توجه برمودید موارد عمیدهی که فقه اخباری و غیر اخباری مدنسه و نجف و علمای مجتهدی و اصولیی

و و خود علمای فقهای های شیعه ما، فقه های ما قبل از معاصر ما، زمان شیخ انساری، اختلافی که بین شیخ و بین آخوند هست و بین هما و بین غیر ما هست، من رو به دیگران دیگران دیگه دیگر. اینجا من نمونه خدمت شما ارز کردم ببینید از این اختلافات در محورهای مختلف که مثلا ما فقط فهرس شما را بگم بازم

خوبه، عیب نداره با... خوشیت اخبار مشاهیر که لم یره فی ای ای هیچ قطع ندارن از مشاهیر رو باتن اینا ما میگیم توصیه لازم نیست خب چون لوکان الفیهم زعفون لبان خب یک مبنائیست یک قاعده است قاعده لوکان لبان این رو اصلا میکنیم و برهن میکنیم به

زیره اغلا به فهم اغلایی به فهمهای اغلایی بله حجت اخبار آهات به توصیقات عامه مثل جعفر ابن قلوبه در کامال زیارات علی ابن ابراهیم در تفسیر غمی و, و, و, و مثل شیخ صدوق در مقدمه منلای احضور کلینی در مقدمه کافی و همسال هم. که آیا به این توصیقات عامه به صافت ربات اصفاد میشد یا نمیشه اصاب اجماع آیا اون اجماعی دون که

شیخ توسی نقل کرده از آیا اون صلاحیت دارد که تمام تماماً وقت بین اصحاب اجماع و بین امام اقماز بشد از ضعبشون و در بست و سروسته و در بسته ما حکم به به اعتبار تمام روایت اصحاب اجماع کنیم میشه یا نمیشه چند تفسیر دارد اختلاف مسادق در وجیه خود اجماع لطفی حدسی ما اجماع شیخ توصی رو قبول نداریم اون

اج مدرکی غیر مدرکی حتی اجتمه نسی محقق باشد که ملاقوجیت دارد اجما خود آیت باشد اما مدرکی باشد و ما قبول نداریم خب نام هم اخلاف دیگران قبول دارندن من صبح جوال قبول داردره قبول قبولدار مدرکی رو توجه برگویم معمال خوبی قبول نداره و ارباد خوبی میگی تجی بر بودیم خواهیمده تصا در ستانن او در چقدر در شده که اصل قایده.

و همچنین در مکروهات آیه جاری میشد نمیشد و روایت اهل عامه آیه مشمول قاعده تسامه در اهل میشد اونم ضعیفان اما میشد نمیشد و اختلاف در اصل وجوه مفاهیم ما غیره و غیر دیگه من دیگه ما تا اینجا کلام رو به پایان میبریم خیال میکنم که اگر جلسه رو به شما بسپرم که هر گونه سؤالی است بفرمایید

به طاقت شما نزدیکتر باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته <تحد hago YouTubers everywhere> <تحدث> خب ما در خدمت شما هستیم اگر جنبای نعیمی، آیون بزرگوار، در هر مقوله سوالی چیزی باشد من در خدمت آیون هستم بفرمایید

به هیچ کس یعنی چون موارد اختلاف زیاد هست در بعضی از جاها ایشون در همین مسئله انجبار ارض کردیم که منجبر نمیدوند ضعف روایت رو به عمل مشهور با مثل مروم خویی موافق هستند مروم امام منجبر میدونند مثلا توجه فرمودید اینطوری در بحث غنا در موسقی سکونی و جای دیگری که مطرح کردن

که ضعف روایت به مشهور عمل مشهور جبران نمیشد در بعضی از جامعه در کلمشون دیدم بعضی از جامعه نه موافق امامن خیلی مثلا در مسئله ولایت فقیه اخیرا در دیده بودیم ایشون جزه فروع میدونند از جزء جزه فروع دین خب در این قسمت ولی اینکه جلوترها ممکن بود مشروب دیگری میداشتند اما اخیرا دیدم که با امام راهل در یک

مشرف هستن و بلات رو ما هم جز فرو میدونیم جز هم مسئله فقیهی میدونیم دیگه بستگی به فرو دارد بستگی به جای جای مبانی دارد رجالی، اصولی، فقهی اینا عرض کردم مهورهای اختلاف یکی و دوتا و دهتا نیست تا اینکه ما بگیم که به کدام اشبهه به کدام اشبه نیست ارتفاط فرمودید

در خیلی از جا به یک فقیهی در بعضی از جا به فقیه دیگر خب هر فقیهی اون مشرب استلالی و منهج فقاحتی و اجتعاد خودش رو دارد تا اینکه در میان این مشارب مختلف کدام رو اختیار می کند اینه ارتفاع فرمودی؟ بله. بفرمایید.

درسته حرف بسیار خوبیه سال متینی کردید فقه اداره نظام کلا اون فقیه است که متکفل مدیریت نظام بشه اداره نظام بشه چه در باب اقتصاد چه در باب سیاست و چه در ابواب مختلفی که به اجتماع و به نظام اجتماعی

برمیگردد خب در تمام این ابواب فق حکم دارد بیان دارد فقها فتوا دارند روایات وارد شده و فقیه از این روایات در هر قسمی استخراج و استنباط میکنند نظر اشاره مقدس رو در آنچه که شما فکر بکنید به اداره نظام مربوطه هیچ موردی شما نمیتونید بگید که مربوط به اداره اجتماع است

اداره نظام است و سآلی باشد بانوان قانون که اسلام در مورد اون قانون حکم چی آقا نداشته باشند اخیرا از مجلس شورا اومده بودن نزد ما که آقا ما میخواییم که این چرا که به داخل در مجلس جز قوانین هست و این قوانین که تنظیم کردن یا اون چرا که

بصرا امام مقام معظم رهبری دورنمای هشت سال رو ترسیم کردن و بعد اومد در شورای انقلاب فرهنگی به صورتی تدوین شد و مجلس اون رو میخواد تصفیه بکنه تبیین بکنه گفتم شما قوانین رو تنظیم بکنید برید به دست ما

مطمئن باشی که در هر قانونی روایتی ایهای حکمی فتوایی با استلال وجود دارد مبرهن کردن اون به آیات و روایات و فتاوای فقها و مبنای استلالی به بهعهده ما نمیشد شما تصور بکنید چیزی رو مجلس من البرع علی از نظام اجتماعی که تنظیم و تدوین کرده

صدها ها اصل و قانون داشته باشد حتی گفتمون مقدمه ایرم که شما میزنید همه با همه اینها حکم دارد هر حکمی دلیل دارد دلیل یا آیه هست یا روایات یا اجماع هست و یا وجوه دیگری از ادله اجتحادیه هست سیره اقلا سیره متشره است. تجاه فرمودیم فلزا میخوام بگیم که این فقیدار اجتماع یعنی بیاد فقیه.

یک چنین تدوینی رو که کارگزاران نظام در اداره نظام اجتماعی حکومت اسلامی تنظیم بکنن یک مدونی رو قانون مدونی رو در جامعه جامعه همه حفاظی هم رو که نظام نیاز دارد فقیه باید اون رو بگیرد و تمام اینها رو مستدل بکند به ادله شرعیه فقی

اینجا میشه یک فقه نظام ساز فقه اداره نظام اعم از حکومت و سیاست قضا و جزا، ثقافه و فنون و اقتصاد و حقوق و غیره بله بفهمید فقه فردی در مقابلشه مثل

کندن نماز خب من خودم نماز میکنم شما میکنید عبادت فردی روز گرفتن و سایر عبادتی که جنبه فردی دارد اسلام فقه ما دو بخش دارد فردی و چی آقا؟ اجتماعی و فقه ما است از فروعی که مربوط به اداره اجتماع میشد اداره نظام اجتماعی میشد منتاش فقی باید استخراج بکنند و بحمد ما در طول چندین سال

گمانم مینه که اون بخش بازمینی از این رو تونستیم در استخراج بکنیم کتابای مختلفی زیاد در این ها چاپ شده و داریم که بخشی از اینها اخیراً تحت عنوان فدومعاصر رونمایی شده که شاید یک چندم از اون کتابایی بود که تا الان نوشتیم این رو و در این زمینه ما به حمدالله کارهایی انجام دادیم لاکن جای کار بسیار بسیار بیشتر هست

بله، بفرمید. سال از این نماد که پردیه مخواد در چاسر اداره اجتماع باشه، این چیزی؟, چیزی نه، این فقط به همین مقدار که این شخصی که میخواد خودش دخلی در اداره اجتماع داشته باشه، خودش باید خودش تربیت بشه. این آیه شریفی قرآن رو در سوره مدسیر ببینید. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكِ قَوْلًا ثَقِيلًا ما در روز بر تو

قول سقیل گفتن یه یعنی نهمون رسالت که دارید نبی مکرم رئیس نظام بود حکومت اسلام داشت و ما قول سقیل رو بر تو در روز رسالتی که بر دوشتری رو بر تو الغام میکنیم حالا بعضی ها گفتن وای بعضیا اون چرا که رسول خدا در روز میباس فتغرق میکنند مسلمین رو اداره میکنند اداره جامعه رو قرآن مجید میگد

شب رو شب زنده داری کن آیه شریف قرآن در سوری قدس قوم اللیل إلا غلیلا او زد علیه اب این قص منه غلیلا آخر بعد در ادامه دارد انا سنول بی علیه که قولا فقیلا بعد و این ناشعت لیلی اشد و و

اَنْكَ وَمُقِيْلَا نَاشَهْ لَيْن رو گفتند نماز شب توجه برمودید ناشهت و رو گفتند سلس آخر شب اشد دو بطن. یعنی اگر شما شب یک دری رو در کوچه بزنید تا اون طرف کوچه ها صداش میاد. چرا؟ چون سر و نیست به خلاب روز هر صدایی را گم بزنید چون از بعد صدا زیاده صدا به جایی آقا نمی رسه.

در عالم معنا هم قرآن مجید میگه اینه ناشت الله لیج و بات آن و با اگر شما باید نسب شب سلس آخر شب بیای مناجات بکنی صداد به عرش میرسه اون زمان وقت نزول ملائکه هست بعد فرمود که انا سنون ریالی که قول چرا؟ چون تو رسالت داری شب باید خود را آماده بکنی متصل به الهی بشی به وحی الهی به دعای الهی به خدا خودت رو

شارج بکنی به قول اصطلاح امروزی ها تولیه و فرمونی از معنویت از عزم قوی انسان که ایمانش بالا باشد اتکالش به خدا زیاد باشد قطعا عزم راسخ پیدا می کند تولیه و فرمون ان انبیا به خاطر اون ایمان بالاشون بود فلذا رفت می قرآن مجید به رسالت روز با کسب قوت ایمان

و از راسخ در شب پس نماز شب میتوند به یک نوی در این فردی که میخواد اداره نظام رو هم اهدار باشد از این جهت تأثیر داشته باشد فقط همین عبادات فردی میخواستم عب بکنم به شما که تاثیرش در اداره نظام این تأثیر فردی در اون شخصی که میخواد اداره نظام رو چی آقا باشد از این باب و الله

ماهیت این عبادت یعنی این رکو سجود و اینا هیچ ربطی به اداره نظام چی آقا ندارد برای تربیت شخص مدیره مدبره از جهت روحی از جهت ایمانی از جهت ازم راسخ ارتفاع فرمودید از جهت کسب سکینه الهی که با فقار و تومعنینه و ایمان کامل و از راسخ بتواند جامعه رو مسلمین رو اداره بکنند بله بفرمید

شکر می‌کنم از وقتی که لطفاً استفاده کردید. یک سوالی که الان پیش میاد نسبت به این سوال سوالی که قبلا طرح کردید، اینه که یک بار هستش که اوغلا حتی میاد، میشن مطالعه میکنن، تحلیل میکنه این سری قوانین رو، بالاخره میام مینویسن. بعد اینو خدمت فقیه ارائه میکنه، فقیه میاد چیکار میکنه؟ ادله رو میبینه و بر حسب عدم قائلت میکنه. چیزی که من خیلی جوان نیستم، با ظاهرا چیزی که قرار شما مطرحه تجدید

ایک دیده هم که از برخ از بزرگون شروع دیدیم این هستش که نه ما هستیم یه شکال می کنید هر چه نظام که میگید بی‌معنا شما ببینید خصوصاهای فن اون ملاقات تا جایی که امکانش هست اون شبکه احکام به برسیم به ملاقات اصلا نظام اقتصادی رو از مذهبی نیست استقرار نظام قواعد نظام هایی که بالاخره تو اساس محتوای سیاست اجتماعی تدویته اون روش این رو از دل فخ استقرار

اینو خواستم ببینم که نظر از شما بده این و چقدر لازم دیدید اگر دقت کرده باشید شما من فاصله تو شما رو در همین سال دادم گفتم از مجلس اومده بودن گفتن ما می‌خویم که در جهل قانون متأثر از غل و شرق نباشیم حرف اینا این بود ما می‌خویم که از اول قانون رو که تسلیم می‌کنی منطبق باشه با مصادر اسلامی خب من گفتم رایش اینه شما خود اون قوانین رو بالاخره یک چیزی

شکل اولیه از قوانین رو به نتیجه میرسید، دارید تنظیم بکنید. اون وقت ما وظیفه ما این است که اون چرا که مطابقت دارد با اسلام مثبت میزنیم، دلیلش هم می بگیم. اون چرا که مطابقت ندارد، همونجا دلیلش چی آقا بدیم. به اینا گفتم، گفتم اگر شما این کار رو انجام بدید، این بر شماست. ما نباید برای شما ماده قانون ایجاد بکنیم. شما ها باید ایجاد بکنید.

تمام آنچه که یک نظام اسلامی لازم داره قوانین رو تنظیم بکنی خب ما میایم اینجا نگاه میکنیم ببینیم کدومش مطابق است کدومش مطابق نیست اونایی که مطابق نیست نه اینکه دلیل این آیه و اون روایت این خلاف اسلامه اونایی که مطابق است دلیلش رو بگیم نتیجه اینکه شما برای شما تمام جهات قانون معلوم میشد که کدومش اسلامی است کدومش اسلامی چی نیست من همین رو قبول دارم که یعنی حتی گفتیم

در بعض صحبت و اخیران. که نماینده ای که از نظر اسلام اطلاعی ندارد حرام است که او بخواد آریانه بگرد در مجلس چون رعی او به عنوان رعی حکومت اسلام دولت اسلامی تلقی میشد بر همه نمایندگان مجلس واجب هست که یک در روایت اومده یا معشرت تجار علیکم بالفق ثم المتجر

ای معشر تجار، گروه تجار، اول فقر رو بیاموزید کیفیت تجارت رو بیاموزید این واژه معروفیه. به تجار. لذا تجار مکاسب می‌خوندن، احکام رو بلد بودن. خب این نماینده مجلس طریق اولا مشمول این خطاب هست که توی که میخواد مقدرات ملت اسلامی با امت اسلامی رو با قانون اسلامی رقم بزنی، بر تو واجب است که احکام الهی رو در اون مورد بدونی. قبلا بری مشورت بکنی، الان که مشورت با یک که راحت

یک فقیه کسی زنگ بزن که این آیا با کجای اسلام تقاییو دارد ندارد این مطلب مطلب است که باید ما فقه نظامی که درست میکنیم قوانینو تصیب میکنیم مطابق باشد و منطبق باشد با احکام الهی نه اونجرا که اقلای عالم الان میگن اغلای عالم اصلا سیر اغلا حجیت ندارد ذاتن

این مورد اتفاق همه عقلای علمای ماست فقط اون زمانی که شاره اگر امضا کرده تا این سیر و غلا بشه چی آقا حجت پس من قوانین اقلایی عالم اگر مورد انزای شاره نباشد یعنی قبولش اگه نداشته باشد ولو به حدن رد این از اعتبار چی است آقا ساقطه.

همینجا نظر ما معلوم میشد که این قوانین در صورتی اسلامی میشد یا فقیه باید این رو تایید بکند با عنوانی که او کارشناس هست و عالم هست و فقیه هست مطالعه میکند اینها رو و با مطالعه رد میکند یا اثبات میکند که فقایش رو نگوان باشند که مقام عظمه رهبری ودی هم میکنن. میکند یا اگر اون خود و اون نمایندن وظیفه دارد که لا تقف ما علی سلکه به

تو داری قانون تسلیم میکنی؟ میدونی اسلام در مورد این قانون حکمی داره؟ تو مسلمان نیستی؟ آیا آیه قرآن نشدیدی؟ لا تقف مولای سلک علمان؟ آیا حکم الله رو در مورد این قانون علم داری؟ دست به قلم میزنی و اثبات رو میکنی؟ این شامل حالوی چی آقا؟ خواهد شد. بله، بفرمید. سلام از می رو

ای رو قسم باشه خدا قربان خاصان شما زبان شاره رو تأسیسی میدونید یا امضایی ظاهران از کلام شما امضایی بودن بعدین و اون عقیده ای که تمام نیست این معارضشون هم دارن بله احکام اسلام هم تأسیسی داریم امضایی داریم هر دو جور هست زبان شاره زبان شعری لسان شعری فرق ندارد بعضی از موارد اصطلاحی رو که علی مع به میکنن

سیره اغلایی دارد ارتکاز در سیر اغلا دارد و اونجا در مسائل معاملاتی هست که کلا اونجرا که حضرات بیا میکن در باب معاملات ریشه در سیر اغلا دارد منتها همون رو قید میزنن، تقیید میزنن و اضافه و کم میکنن و در بسیاری از اونجرا که اونجا ریشه در سیر اغلا ندارد اختراعی هست مخترعه هست مثل همین احکام عبادات، حج

صلات سنگ، اینا مخترح هست و اما عد بسطی هم دارد خیلی از احکام هست که مثل مسافر موضوعش عرفی هست اما شارع همین مسافر رو که اومده برای شفاق داده یه قیدی قرار داده که مسافر که هش فرسخ حیاب داشته باشد یا غنایی که هر غنای نه غنایی که فلان غیده اومدهان سبت و مدید رقص داشته باشد و بحرومت بکنند

در مجموع احکام شریعت به دو قسمه اون را که ریشه در سیره عقلا دارد یا عقل دارد اگر عقل و عقلا رو دو تا میشه سه قسم دیگه یا ریشه در عقل دارد یا ریشه در سیره عقلا دارد یا اینکه نه نه عقل اون حاکم هست مثل اینکه نماز ظهر رو باید چهار رکعت بخونید و نماز مغرب مغرب سه رکعت و اشار رو چهار رکعت این عقل حوکمی نداره اینجا توجه فرمودید و عقلا نیست اصلا رفی نداره به اینها

اینا احکام توقیفی مهد میشد و مختلعه میشد توجه فرمودید بسیار از احکام لاهی ای از این قبیل احکام مختلعه شهری هستن بعضی هستند که نه ریشه در سیر اغلا دارد اینا امزایی هستن امزا میکنه و نه نه در راکمان احب دارد الله و اتیال رسول و اولیل امر من و افا من بل در مثلا و نسی خلقه قال من یحویل اضام و ی رمیم

بود지요 یی هالذی اول مره اینا آیاتی که خب ریشه در عقل دارد از احکام اسلام از این جهت به اقسام متنوعی تقسیم میشه بله زبان مخاطب زبان بله اما زبان تخاطب. زبان تخاطب بجز فقط

مسائل عقلی که الان من دوتا آیه شو خوندم مثلا فتحون که دارد که حالت اليهود و ید الله مقدوله غلت ایدیهم بل یداه و مبسوطتان اینجا دیگه عرفی نمیتونه باشه فقط در مسائل عقلی این به معنای ید جارعه نیست در حالی که قاعده ید علن ما اخذت حتی تا اونجا ید به معنی چیستقا عرفیه اما در اینجا چون مسئله

عقلی هست اینجا همه مفسرین علمان این میگن مخصوص سلطه هست یاد الله مبسوطه یعنی قدرت پروردگار شامل و جامع هست جامع هست همه ممکنات رو چی میشد آقا شامع میشد این ید یعنی قدرت الله چرا حالا سمیه به ید چون ید مظهر قدرت هر انسان هست سمیه یاد. و ایلا این به معنای اون ید جارهی که مفهومورفی دارد چی آقا نیست.

اصلا من متبادل عرفی چی آقا؟ نیست، چرا؟ چون غنینه عقلی داریم اینجا در موارد این هم همینجور، هر جایی که صحبت از عقاید عقلی محضه باشد که توقیف، توقیفی نیست عقل مستقل اونجا حکم دارد، اینا همه شاره مقدس و از این منزه اینالله علالرشست توا یعنی تخت، خب مگر اگر در جای دیگر بود

غیر و خدا اینجا به معنای گفتن اینکه این که بر تخت نشسته در حالی که خدای تعالی محال است از عقلی جسم باشد و بر تخت نشیند همین قرینه عقلی قطعیه که حافظ به خطاب است کین انزال کتاب کین الغاء کتاب شارب اوغلاا صحبت کرده اوغلا عقل دارند به قرینه قطعیه این کتاب قطعی ظهور میداد در غیر معنای منظور لب توجه فرمایید حالا بعض هم ظهور وجدت میشد منته مؤین ظهور گاه قرینه عقلیه چی هست

و در مواردی که خاصیست این که احکام عقلی باشد که عد کردم. اما در سایر موارد احکام بشد که جلقش هست از احکام فقه اینا اصلا رفتیم اصلاع اقلی چی ها ندارن. اونجا همون نظر غرف هست و متفاهم غرفی حجت هست. بسیار تو تو؟ در متشابه ها. متشابه ها در آیات شریفی قرآن منجید خودی.

خدا일부터 حالا اخبار فرمود اعلان فرمود ای مکلفین بدانید که متشابه حاد را تعبیرش فقط خدا میدنند و راسخون در علم علم ما قبول نداریم اون کسی که میگه راسخون maksud این است که هر کس راسخ در علم و ولو غیر ایمن معصومی این حرف درستی نیست روایات متواتر داریم که راسخون فی علم هم الائمه علیهم سلام و اونها هستند که آیات متشابه رو

که آیات متشابه هم تعریف دارد ما در قواعد تفسیری تعریف مختلفی نعد کردیم و اون تعریف مختص تحقیق رو بیان کردیم اونجا از متشابه متشابه رو فقط امام معصوم و نبی مکرم باید تفسیر بکنن التفات فرمودید یا اینکه خود قرآن مجید در بعضی از موارد باید تبیین بکند مثلا میگه صراط الذین انعمت علیهم هو خب انعمت علیهم همه بود بیان هم ما انعام علیهم هستیم

اما قرآن مجید جایی تفسیر بیکند الازین عمل الله عليهم منن من من بیانی هستی که منن نبیگی نوشت و فدای و صدیقی خودش تفسیر بیکند این من کم هستند جاهایی که متشابه قرآن و خود قرآن تفسیر بیکند بسیار اندک هست اما جل متشابهات قرآن رو ما تفسیر کردند توجه فرمایدی مرجع محکم در فهم متشابه و در تفسیر متشابه فقط روایات عدم تدیم

که به مسائل نظام پاسوب میده. درسته فطح نیست که خودش ابتداعاً و ایجاباً سوال داشتشن و نظام تر رایی رو کنه باره طبعی که آجام فرموندن طبق نگاه بابا مزار رهبری که آن اونجان ترست ایشون حتی تحارت را ب... یه جور میبینن که میگن باید با کرده فطح نظام بهش نگاه بشه یعنی تو توی جامعه جا تح

ما ای این دی رو قاامو بکنین یه رویه کرده خاصه یعنی دارن تفاوت وجود داره اما وقتی تو رویه شما فردین مرحله تعامل هست چرا چرا ما ببینیم که قانون قوانین رو بیارن خب ممکنه یه سر قوانین بیارن نیاون که با اسلام مشکل نداره حتی با اسلام هم هم هم هست خب اون تا ممکنه دوباره همون در همون وجود دوباره یه قانون دیگه بیارن ببینید دوره ما مشکل نداره از هم یک نظام از در

فقیرنش نبشه اینه چون میگه که, که خود اون قانون به اسلام نزدیک تره یا به واقع هرکام مثل ما دیگه رضا از طب لازمی که خود فقیه ایجاون و افتداعا به سمت تحسیس یک نظام مثلا اقتصادی یا سیاسی حرکت بکنه و یعنی اونی که فقیه در واقع پیشکام کسی دیگه است فقیه داره دره راه اون ازام میده بله، به ناخره فقیر میتواند که محال نیست

میتونه پاس بکنه تمام این جز احکامی که بین تا الی مرتبط به فقه نظام بشد و جمع بکنه تدویر بکنه تا اون جایی که به اصطلاح در عدل وارد شده رو نظام بندی بکنه ولی که که در روایت اومده امام زمان علیه السلام فرمود اما حوادث الواقع فرجویی ها رو با حدیثنا

یعنی از ما تاج بشر که رخ میدهد شما رجوع بکنید که اونها حکمش رو برای شما بگن فلذا اینها موظفند به فقیه رجوع بکنند. در اون حوادث این حوادث چیه؟ تمام آنچه که که در مجلس شروع استومت را همه اینا حوادث واقع هست تمام اون که در این مجلس شروع مطرح میشهد چی هست حوادث واقع هست.

و غیر از اینها و صدها برابر این که بعدها خواهد مطرح شد یا قبلا مطرح شده خب امام الاسلام چه فرمود؟ فرجی و ربات رباط حدیث نابری بکنید شما سوال مطرح بکنید و فقی به شما جواب بدد کدامش مطابق اسلام هست کدامش چی آقا؟ نیست چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این که حوادثی واقعه

تعدادش هزاران برابر از روایات و آیات اینجور نیست که برای هر حادثه یه روایت جدایی منده باشد که ترجم برمودید تعداد حوادث واقعه تا الانش حالا چقدر تا قیامت طول میکشد خدا داند حوادث واقعه هزاران برابر تعدادش از تعداد روایات و آیات است خواه؟ بیشتره

ذا فرمود که علینا الغا الاسول و علیکم التفریق یعنی کل را که عیمه علیه السلام الغا کردن این اصوله و فقیه باید حدها و صدها فر از هر اصلی که ائمه علیه السلام در روایات باید کردن چی آقا در بیاره؟ بنابراین اما الحوادث الواقعه یعنی بزرگ که به حوادث مطلع محتلابه شماست

که ما دو جامعه هستیم میتونید مقتلابه شما چیم مگه علم کاهن ما یکون مگه دارد مگه ما معصومه مگه فرقی اطلاعش محدوده مقتلابهش نیست همه حوادث همگان همه مسائل مقتلابه مقتلابه همه هست خب نماندوگان مجلس دید زیادی هست اینا انواع حوادث مقتلابه رو میانن که ارتباط به نظام جامعه دارد اداره جامعه دارد

میان قانون میکنن هر قانونی که اینا دارن میگن اسلام در ماده حکمی میدارن اینا وظیفن در این حادثه واقع و نصفه چی کار میکنن آقا سآل بکنن جواب بده حکومت این شخص باشه هر مسئله از این که در مسئله حکومت شارع مقدس فرمود

فقط حاکم فقیه هست و بس او باید حکم بکند وگرد را و من ممن قدر رو حی سنا ممن رو حدی سنا و حلالنا و حرا من و ع احک به حک باید راضی بشن که او حکم باشد یع یعنی قاضی بشد.

كرا لديديه فانني قد جعلت عليكم حاكما بقول شيخ انصاري در كتاب و جزا ميگه حضرت اول ام فرمود يرد حکم یعنی به حكما حكم يعني دو نفر متخاصم بعد اول این فرمود بعد عدل کرد عدلا من الحکمیه الى الحاكميه

یعنی گفت این عدولششون میگرد از حکمیت به جهت و حاکمها این غرینه است که ولایت فقیه ال حکمیت و القضا فرق و حکومت المطلقه این نفذ مطلقه در کلام شیخ انصاری است در کتاب قضا و جزاء تجربه برمید یعنی این تعلیل خودش گویاه اینه که چون من او رو حاکم مطلق قرار دادم در تمام آن چراکشون حکومته چون که صد آمد نبد هم پیشه

ماس مسئله قضاوت جزگی از اون حکومت چی است مطلقه هست فلذا حضرت به اون ام استلال کرده که چون اون ولایت من بهش دادم پس شما باید به او هم چی آقا راضی باشید خب از این است که مسئله حکومت حکومت در شن فقط کی است فقیه که عمو مراتب رو داره منتها فقیه در موضوعات مقتلابی باید مشورت بکنه

خودش که همه جهات اعتبار رو رسول خدا مشورت میکرد و شابه روان فل امر به قول بعضی از آقایون بزرگوار مفسرین قدیم بکفتن که خب حرف درستیه که رسول خوش همه رو چرا مشورت میکنه بیگه ها برای که حکومت بدون مشورت با کارگزاران حکومت قابل اداره چی ها نیست شابه روان فل امر و ازا عظمتر فتوکر علالله اون موقع

رو خود خودت صادر بکن تو مغلد مشابوری نیستی اون مشاورین به تو مشورت میدن تا تکونه علا بصیرت این فی حکمک توجه فرمودی این این رسول خدا نیاز نداشت البته به خاطر اینکه گفتن چه ها اگر رسول خدا مشورت نمی کرد اونا اصلا تن به حکومت رسول خدا نمی داده. وقتی که احساس کردن رسول خدا به مشورت کرده خودشون رو زو و زو سهم می در حکومت لذا تن به

به اداره رسول چی آقا ولی در مورد فقیه این نیست فقیه حقیقتن نیازه مشورت دارد حقیقتا این شورا مسئولت همینی دیگه مشورت دارد لیکن با مشورت اون مسئولت که ایجاد شد اونی که نهایت به تصمیم بگیرد راهی خودش رو فقط حاکم بکنه فقیه مشورت درسته مستحبه بلکه واجب هم هست در مساعد کارشناسی موضوعی و مساله نظام ل

آخرون هم اونی که باید تشخیص بدن و نهی خودش رو محکم بکنه فقط فقیه حرام است که ولی هم بخواد در مسئلهی مقدمت مشورت دیگران بشد فقط باید نظر خودش اعمال بکنه. مشورت مقدمی است برای اصل ایجاد تعرف و احاطه بر مسائل چی آقا؟ نظام بنابراین در حکومت فرق دارد مسئله حکومت با قانون مجلس

قانون مجلس بخواد تا مرحله حکم برسه بعد شورای نگهبان تصدیق کنند آخرش هم ولی امر هم در اونجا یا باید اعتماد کامل داشته باشد به شورای نگهبان که اینا حقوقدانانش و فقهایشون هم با هم تضمین می‌گیرن اون همون هست که مقتضای مصلحت نظام هست یا اگر کلمج هم اختلاف شده آخرش دیگه شورای چها مصلحت نظام میگه در اونجا میشه با اون حکم میکنن

نتیجه این است که آخر الامر اونی که باید باید قانون بشد، الزام باشد باید به با کی منتهی بشد آقا به حکم بدیگه امر یا به مباشره یا امضا اون کسی که گفته حکم تو از نظر من نافذ هست مجموعی شش نفر، هفت نفر اگر شما با هم مشورت کردید و با احطه که به دین دارید، فقاهت دارید و چند حقودان که پر شما هست با هم

وقتی که مشورت کردید به این نتیجه رسیدید من همون رو امضا میکنم نه به کلی چون در دونه دونه اینا بخواد یک شخص رو هم دخالت کسی امکان ندارد برای او عادتا امکان ندارد توجه فرمونی با مجبوری که به از اشخاص کارشناسی در فط و مسئلیت برای حوقدان اتقا بکنند حکومت فرق دارد برای بفهمید

خداوند حفظتون کنه انشاءالله امروز برای بنده مختنم بوده خیلی خیلی خوشحال شدی بسیار بسیار جمعه بسیار خوبی و سؤالات و اشکالات که شده معلومه که بحمد الله تعالی مطالبی رو الحمدلله توجه دارید میگیرید مطالب رو و یک موجب افتخار هست برای ما خداوند انشاءالله تک تک شما رو

از ناصرین دین خودش و مبعندین رسالات نبی مکرم قرار بدهد و مقام محظم رهبری رو در کنف حمایت خود و دعای ولی امر محفوظ بدارد انشاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و

سلامتی و از و

من تمام شما رسید اگه ما در اجان داریم چنده آمزش برش بود چنده تنظیر چنده اگه درست دران یه واقع هستش که یک سلی کاشناسان ها اشتر در بیارن ما بیاییم یک طبیه باید نبیاد و باید با اسلام ندارد یه واقع هستم فرقه ها نه یک فرقه ها همه چیز اصلا عادیه اصلا فرقه ها تمام به شما گفتم که محال

بدونم نه موضوع شو ما شده کنن نظام اینه نه موضوع کلی کرا هم کاملا درسته اما آهاد مسال مبتلابه رو بخوان نظر بده فرد بر عرضه هست دیگه فرد برای عرضه هست یعنی شما ها آه، اهل آه اجتماع هستید اصول خواهشو تدویر بکنن آره دلوقتي. نظام دلوقتي. هم نظام فکریشو منزومتشو تراحی کنن این نداره هر مسئلی جدی که نازم ارزه کنن ما تراحی کرد

فقل عباده، مکومت و سیاست قضا و جزا، اقتصاد و حقوق، فقل قسره، فقل طب، سقاف و فنون و هفت بخش کل مسائل نظام رو تقسیم کردیم و تا الان فرهای عمیدهی به نحب کلی زیاد با استلال اینا رو نوشتیم و منتشمه چاپم من شده دراجو پرمورید

زنبیان